Thank mm -hmm. you. بخش سیوم این همه واقعیت بود. نه اینکه که دروغویی اصلا توی ذاتم نباشد اما بهتان امضا میدم که همه این حرفایی که برایتان گفتم راسته راست است. چون الان جدا شرایط روحی خوبی برای خالی بندی ندارم. به آن خدایی که میپرستید همه چیزهایی را که میدانستم همینجا نبشتم. نگر اینکه اینکه دور از چشم من اتفاقاتی افتاده باشد که ازش بیخبر باشم همین این هایی که توی این برگه ها نوشته هم اعترافات هم درباره قضیه لاله و عضویت در شبکه های هرمی بود. اما آن مواد هایی که میگویید زیر صندلی موتور جاساس شده بود در این مورد هیچ حرفی ندارم که بهتان بگویم یعنی اصلا روح هم, هم از این قضیه خبر ندارد. ما توی غع مرغی خانواده خیلی آبروداری نیستیم ولی آنجورها هم نیستیم که بخوایم دو کیلو دو کیلو و کراک جابهجا کنیم گوش و گوش هم خبردار نشود. این مسئله به انسانیت انسانیتمون مربوط نیست، منظورم بیشتر جربوزه این کارهاست که هر کسی ندارد. مسئله این است که من ساده در مورد دیدن برق پشیمانی توی چشمای الیاس به کاهدان زدم. همانطور که میبینید نصف بیشتر بدبختیایی که تا حالا سرم آمده است، هیچ به خودم مربوط نمیشود. و حتما متوجه اید که این خودش چه بعد بیاری بزرگی از آن نانی که پدرم توی دامنم گذاشت بگیرید. تا این وصله هایی که خودتان الان دارید در مورد این دختر به هم میچسبانید؟ باز هم میگویم شاید لاله تقاس خیانتش را به زندگی پست داده باشد ولی من به هیچ وجه غص نداشتم شخصاً وارده عمل بشدم و حقش را کف دستش بگذارم یادتان نرود که من به غیر از یک ساعت آخر تقریباً خاطرخای لاله بودم و به جرعت میگویم که او هم لعقل توی یک ساعت آخر به من علاقه من بود او بدون هیچ منتی با من قرار ملاقات گذاشت و تازه بدون هیچ چشم داشتی پول دیزیها را تا قران آخر حساب کرد. آن عزیزم هایی هم که گفته بود خودش کم چیزی نیست چه لاله بماند چه خدای ناکرده عمرش به دنیا وفا نکند و به تیر غیب گرفتار شود اگر شما خواستید حکمی برایم ببرید حتما باید به این چیزها توجه کنید. تنها گیر جالب توجهی که میتوانید به هم بدهید همان نداشتن گواهینامه است که در این مورد خاص حق کاملا با شماست اما هرگز به خودتان اجازه ندهید که به هیچ عذر و بهانه‌ای دیگری چوبخام را چاق کنید. این دست اتفاقات ممکن است برای هر کسی پیش بیاید و این به هیچ عنوان مسئله تیپا خوردن از اجتماع مربوط نیست. شاید حالا کمی دیر شده باشد ولی این را از من داشته باشید که گاهی جامعه بی خود و بی جهت به انسانیت تیپا می‌زند بدون اینکه چیزی به او باشد. عذرام این نیست که به خاطر مشکل شخصی من بروید جامعه را دستگیر کنید. اما کمش این است که دیگر همه یک کوزه ها را سر من نشکنید. همان نازم بی پدر و مادری که یک موضوع به آن سادگی را پیراهن عثمان کرد و من را یک ماه آزگار سفیر و سرگردان کردم باید محاکمه بشود. حتی همین پدرم پدرم هم باید حد پیگرد قانونی باشد. او قبل از آن نازم هیچی ندار من مرا آلاخون والاخون کرده بود. شاید اگر آن اسکندر انتر آدم بهتری بود یا آن لاله‌ی سرخوش آنطور برای من زیررو نمیکشید اوزا الان جور دیگری رقم میخورد شاید از حرفم خندهتان بگیرد ولی گایی پیش خودم میگویم که ای کاش آن روز بارانی نبود نمیدانم این آخری ها حاجی نعمتی دوباره نمازی چیزی خوانده بود یا اینکه که باران خودش آمد ولی هر چه که بود باران هم به سهم خودش ناسخم را پیچید حالا دیگر خیالم راحت است که همه گفتنی ها رو به گفتم با اینکه هنوز هم همه شواهد و مدارک علیه من است اما شما لازم نیست زیاد نگرانم باشید. من اعتقاد دارم که خدا همیشه در آخرین لحظات انسانیت را قافلگیر میکند. شرط میبندم